حالا به نام خدا خیلی خوشحالم در خدمتون هستم میبینم اتون، واقعا نمیبینم اتون انقدر که نور تو چشمه همینجوری که صحبت میکنیم امروز در مورد نور بیاییم در طول اطلاعاتی که حالا با هم رد و بدل به این فکر کنیم که قدرت نور بیشتر هست یا قدرت تاریکی حالا هر کسی از زن خودش دیگه ممکن اصلا میگه الان قدرت یعنی چی؟ الان زور چی بیشتره؟ میخوایم چیکار چی کار کنیم؟ نور مصنوعی؟ نور طبیعی؟ با خودتون باز هستش ولی همجوری که حالا گفی میزنیم در آخر اگر فرصتی شد ببینیم که حالا نظر شما چیه؟ حالا یه نظر شخصی هم خودم دارم امروز یه ذر سخته در مورد نوری صحبت کنیم که خب همه ازش لذت میبریم هیچ فکر فکر که فکر بد باشه. و خب عنوانش هم بود نورهای زهراگین انقدی که شاید کچنده باشه هیچ وقت ولی کسی از نور نمورده از صدا هم شاید نمورده از آلودگی های دیگه مردن دیگه حالا آلودگی هوای تهران ماشاءالله خیلی آمار های زیادی داریم ولی این اتفاق نیافتاده فقط به خاطر اینکه یه ذره شاید مثلا کره چشم یه جوری عمل میکنه که ما درد نداریم مثل اینکه حالا صدای زیاد یه ذره گوشمون اذیت بشه، سنگین بشه ما چشممون خیلی این ریاکشن های اینجور رو نشون نمیده ولی همون برای یه مقداری عجیبه 137 سال پیش این مرد ادیسون یک کاری کرد که حداقل برای ما منعجمه ذره جالب نیستش ولی کاری که ایشون کرد در 1879 خب قبل از اون هم ما از نیروی برق میتونستیم نور تهیه کنیم ولی انقدی به دردمون نمیخورد این آدم تونست با یک اون لامپی که مشخص هستش این محبت رو به ما بده که الان شما من میتونید ببینید توی جای تاریک و فکر میکنم که این نور بود و قدرت نور مصنوعی لامپ و علاقه مردم به روشن کردن فضای داخل که برق و در دورترین جاهای کره زمین هم بردش و بعد از اون خب ووسیللی دیگه همجوری اضافه شد. این اتفاق انقدر سریع و با شدت رخ داد که الان شاهده همچین تصویری هستیم از آسمون وقتی از کره زمین عکس گرفته میشه دیگه آسمون از دید موجودات بیگانه ناپدید نیستش. حالا به بچهید نجوم به شوخی میگن اومدیم و موجودات فرازمینی خطرناک بودن بیاین زمین رو از دیده اونها پنهان کنیم ولی از بحث مزاحش که بگذریم یه همچین تصویر رو مشاهده کنیم اینا چیه تمام نورهای شبانه که ما داریم زندگی میکنیم در شب به نظر نیاز داریم ولی خب داره قطعا رو به هوا میره دیگه که تونسته این دوربین ثبتش کنه یعنی ما میتونیم الان این لیزر کار کنه بله نه خب این جاهای تاریک مثلا بیابان های آفریقا جنگل های جنوب آفریقا فلات هایی که تو آفر... آمریکای جنوبی هستش کویر بزرگی که در استرالیاست اینجا جاهای تاریکی هستش که حالا ما شاهدیم ولی خب اروپا ایتالیا اون چکمش مشخصه آمریکایی که خب اصلا یک اوزای عجیب غریبی داره همجور هند ایران خودمون هم خیلی اوزاش مساعد نیست حالا این عکس رو ما جالب‌تر می‌بینید ولی این چیه یه مقدار دقیق‌تر ببینید به نظر ادیسون وقتی لامپو اختراع کرد می‌خواستش که ما کارهایی که در روز انجام میدادیم در شب هم بتونیم انجام بدیم یا کارهایی که در شب به سختی انجام میدادیم ما تر بتونیم انجام بدیم سرعتش بیشتر باشه کارا دقیق‌تر باشه یعنی به طور مثال شما وقتی آشپزی میکنید خب به نسبت اینکه دارید نقشه کشی میکنید یا خیاطی میکنید نور کمتری احتیاج دارید هر چی کار دقیق تر باشه نور بیشتریه خب اینا تو جداول مهندسی اومده ولی <ص loser> این اتفاق افتاده یعنی اون جایی که ما لازم نداریم روشن هستش تصویر سمت چپ من تصویر سمت راست شما نور داره به جایی میتابه که نیاز نداریم یعنی در واقع اینجور لامپا حالا باز با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنید اینجور لامپا میگن که ببینید من زیبا هم، من لامپ منو ببینید، این لامپس که زیباست این خود نوره به کمک این نمیاد که شما یه کاری رو بهتر انجام بدید برعکس تصویر سنت چپتون که قشنگ نور به اونجایی که لازمه زیر پامون رو قراره ببینیم، راه بریم، اتفاق می‌افته نور میاد کمک میکنه در نورپردازی فضا فضاهای شهری که ما یه تصویری که در روز ببینید در شب یک جوره دیگه ببینیم یا زیباتر ببینیم یا حتی راهنمایی میکنه به سمت ورودی خروجی یا حالا مراکز خرید هر چیزی که از نور این این هنر رو میتونه داشته باشه ولی خب این تصویر واقعا چه کمکی میتونه به ما میکنه ضمن اینکه خیلی آزارهای دیگه داره حد مثلا برای خلبان ها میدونید چند بار هفوپیمان نزدیک بوده تو تهران رو شهر بشینه فقط به خاطر اینکه باند فرود مهراباد رو پیدا نمیکرده الان برید میدون آزری میبینید ادامه باند چراغ خورده و تو خیابون تو میدون آزری پرژیکتورا رو به آسمون هستش و خب اگر خوب ریزاین بشه نور قشنگ به اون جایی که لازم داریم تابه همچین تصاویری داریم از سمت راست شما اون چراغ خیلی مناسب هست قشنگ نور هدایت شده با یک سرپوچی به سمت پایین تا تاثیر سمت چپ که خب تقریبا 95 درصد نور داره به آسمون میره و همه اینا انرژی و ثروت ملی و این یک صورت انرژی هستش که داره به این شکل هدر میره از پایین تا بالا چراغ های خوب و بدی که ما داریم پایین خیلی مناسبه حداقل ما منجم ها و البته خب خیلی از مردم که نور دقیقا به سمتی که میتا... پایین لازم داره میتابه دو طرف وسط نصف نصف تقریبا البته تو هر چراغی خب خیلی فرق میکنه و اون بالایی هم که خب قشنگ داره نور به سمت بالا میتابه در کل وقتی از نور به روش های غلط و غیر استاندارد استفاده کنیم طوله حالا دیگه نوری کردیم حالا این استانداردها هست و جداول مهندسی روشنایی وجود داره فقط یه اختلافی بین طراحان روشنایی هستش دیگه اون جایی که تو به نور پردازی میرسه یک جایی میخوان مثلا آب نمایی چیزی زیبای کن خیلی قانونی نداره و میره تو بحث هنر و پای معمارها واز میشه البته اونا واقعا پایبند هستن به قوانین زیبایی شناسانه و آلودگی نوری فقط لازمه که مسئولینی که موظف هستن فضای شهری ما رو اونجوری که حال خوبه به ما بده طراحی کنن بیشتر وقت بذارن یعنی قبلش مطالعه بشه نقشه های روشنایی در بیاد و مطالعه بشه که وقتی ما توی یه جایی داریم و قدم میزیم حال خوبی بهمون دست بده. وقتی تو پارک های تهران قدم میزرییم فقط شما لامپ می بینید به جرات خیلی از پارک های شهر تهران میتونیم اسمش رو پارک های چراغ بذاریم ببینید از چراغ هم، استفاده متفاوتی میشه مثلا اینکه حالا احساس آرامش میخواد به ما بده مثلا این فروشگاه که ما میخویم برامون رنگ مهم هستش میخوایم ببینیم چه رنگی برامون مهمه چه ای مهم هستش و خب این دو تا تاثیر قشنگی میتونید خودتون انتخاب کنید که تو چه محیط چه رنگ نوری دوست دارید خرید کنید یه رنگ زردی که یه ذره احساس آرامش و ملو خواب‌آلودگی میده یا رنگ سفیدی که حرکت و اکتیو بودن و شادی رو به شما میده و بعضی از معمارها هم مثل این دانشگاه تو بیان میان از سقف تعبیر دریچه های روشنایی و تا وقتی که خورشید در آسمون هست از روشنایی استفاده نمی‌کنن توجه کنید میان در ارض‌های شمالی معمولاً مه گرفته، حالا نسبت به کشور ما عبری هستش و باز کشور ما رو ببینید در چه شرایطیه و معماری 400 سال پیش چه شکلیه و معماری ما چه جوریه؟ الان جدیداً دیگه کرمان میرید یه جوره همون شکلیه که تو ق... تبریز هست همون شکلیه که تو یه هستش خیلی من خلاصه حالا اشاره میکنم یه ذره سریعه ساختمون مجلس کشور سوئیس، مقایستش کنید با تصویر بعد از کشور خودمون این هم یک نهاد دولتی هستش اینی که میگم وقتی میخواین قدم بزنید تو خیابون حال خوبی بهتون دست بده همین هستش دیگه ببینید این تصویر وقتی از کنارش رد میشید انگار که یک تابلوی نقاشی رو دارید میبینید مثل بچگیمون که رنگ کردیم یه چیزی رو باید پنبه میکشیدیم روش نرم بشه من این حس و نسبت به این دارم ولی تصویر بعدی اصلا توجه نکرده که توجه نکرده که من ایرانی با یه سابقه یه ایرانی اسلامی رنگ قرمز معرف چی هست برای من رنگ صد معرف چی هست اینه که میگم بدون مطالعه این اقدام ها رو انجام میدن حالا این چراغ های خیابانی رو یه اشاره‌ای کنم تصویر سمت چپ اشتباه معروف هستش به لاک پوشتی چون اینا زیرش گرده حالا چون بالاش معمولا چون به خاطر بالا بودن گرد بودن بالاش میگن اون تصویر سمت چپ اگر روشن باشه اینجا این اطلاف ها رو داره یعنی همینجا مستقیم رو به آسمان ما انعکاس داریم از کف باز انعکاس داریم بدون اجازه نور وارد خونه تون میشه خیرگی برای آبر یا راننده داره و باز این سمتم باز ما اطلاف داریم اومدن تلسکوپ های خیلی بزرگ برای آموزش بردن بیرون شهرها که از دست نورهای شهر راحت بشن شهرها روی افترفته پیشرفت میکنن میرسن به این تلسکوپ ها ما منبت‌های آسمان آسمان تابو از فاصله 100 کیلومتری حداقل از شهرها دارن بر مورد تهران 300 کیلومتری این مشخص هستش و وقتی حتی ما پشت کوه هم قرار می‌گیریم نور به اتمسفر می‌خوره و برمیگرده به ما و یک جو ناپایدار رو برای ما درست می‌کنه این تصویر مال نوری نیستش ولی خب بی‌ربط هم نیستش اگر از شهرها ما دور بشیم آلدیگنوری نداشته باشیم جومون پایدار باشه نور آسمون سیاه شب و قهوه یا نارنجی نکنه ما تصویر سمت چپ رو از مشتری داریم این تصویر واضحه. ولی وقتی این اتفاق نمیفته حتی حت حت حت از کنار شهری مثل تهران ما اینقدر تصویر واضحی نداریم تصویر مشتری رو دیدید حالا چه اثری بر انسان داره؟ نور بیش از اندازه آسانه تحمل رو کم میکنه افسوردگی داره و خیرگی مثل همین پروجکتوری که تو چشم من هست یا وقتی که شما رانندگی می‌کنید نور تو چشمتون هستش حالا عکسش نشون تو درازمدت آسیب‌های چشمی داره استراب و استرس داره کاهش تمرکز فکر رو داره دیدید فیلم‌های پلیسی رو نور می‌ندزن تو چشم متهم که آسانه تحملش بیاد پایین استرس بهش ایجاد بشه و اون چیزی که لازم هست رو اعتراف کنه و اینکه به خاطر یه هورمونی به نام ملاتونین واقعا این گیر داره آی من رو به اتاق فرمان می‌زنم ولی هورمونی به نام ملاتونین در ای بابا اگر اتاق فرمان بیاره رو همون سلاید من توضیح بیاره هرمون ملاتونین در بدن هستش که تقسید قدره قر... پینهال مغز ترشون میشه این در شب ترشوهش ده برابر روزه اتاق فرمان کاری نمیکنه کنه نور باعث میشه که ترشوه این هورمون متوقف بشه آره یه دونه دیگه و یکی دیگه امم همینجا مرسی این هورمون دست ساعت بیولوژیک ما رو تنظیم می‌کنه. وقتی شما از خواب بیدار میشید اگر در تاریکی مطلق نخوابیده باشید هنوز بدنتون احساس کرخی و خستگی داره. یکی از دلایلش این وجود نوره. حالا چجوری متوجه بشید که اتاق نور داره و ملاتونینتون ترشح میشه یا نمیشه؟ انواع لامپ رو اومدن اندازه‌گیری کردن که 50 درصد ترشوه ملاتونین تو لامپ LED سفید 13 دقیقه طول می‌کشه ملاتونین تون 50 درصد توقف پیدا کنه و کاهش پیدا کنه ترشوهش من سریع می‌گذرم خودتون اینا رو ببینید کم مصرف 15 دقیقه این لامپ‌های ادیسونی 39 دقیقه شم 66 دقیقه و این آخری خیلی جالبه این, این نور قرمز 403 ساعت طول می‌کشه یعنی هرچی نوری که به سمت سفید هست و طیف آبی داره مخصوصا حالا اگر مثلا لامپ استاندارد همشه فرابنده خوش داشته باشه که هیچی زودتر ملاتونی نتون متوقف میشه و چرخه های خواب رو بیداری، چرخه های گشنگی اینا چیزهایی که تو جتلک اتفاق میفته میتونه این اتفاق در بدن شما بیافته و در, در دن تمام شهرنشینان میفته چرا؟ ابزار که نداریم بر اندازی گیری شما تو اتاق خوابتون وقتی همه چیز رو خاموش کردید چشمتون بعد از پنج دقیقه به تاریکی عادت کرد دستتون رو باز کنید آرنج باز کنید اگر انگشتاتتون... انگشتاتون رو دیدید شما آلودگی نوری دارید که ملانتونیتون درست ترشح نمیشه و این اتفاق در الان در تهران به جای رسیدیم که ما میتونیم در تاریکی رنگ تشخیص بدیم. یعنی از حجم، یعنی تشخیص حجم کتاب خونه، کمپیتر، این گذشته ما رنگ رو میتونیم، تشخیص فاجعه است. خیرگی، وقتی پشت ماشین هستید، اگر پروژکتور مستقیم به چشمتون، بتابه نمیتونید خوب ببینید و این یک جاده خیلی خوب هستش که نور به سمت بالا هم نمیره من چون فرصت کنه، تونتون رد میشنم ببینید، میریم روی پرندگان، روی جانوران قوه یابی پرندگان مختلف میشه بیشترین آسیب من فکر میکنن به پرندگان بخوره چون خب نور رو قوه جهدیبهشون تاثیر میذاره طالاب رو برای مهاجرت گم میکنن این تاثیر روشون جای گرفته منتشر کرده پای یکی از برجات تو نیویورک که تو وسط مسیر مهاجرت پرندگان بوده ببینید یک شبه ها این یک شب این تعداد کشته شدن الا پای یک برج و بعد از 5-6 سال پیش تصمیم گرفتن فصل مهاجرت خاموش کنن نمای برژهاشون رو یعنی ما چقدر باید مواظب به رفتارمون باشیم که به محیط زیست آسیب نزنیم و به خودمون آسیب نزنیم چون این یک چرخست دیگه ببینید به جای کرمه شبتا به اشتباه گرفته این ریسه رو و اگر این جدا نمی عکاس اکاز که پزش کم بوده این از درون داغ میشد و می مرد. من می یک الگوی واقعا چقد باید مطالعه کنی. درخت‌ها این درخت نصفش زیر چراغ نصفش نیستش. فصل برگ ریزانش حاد دست داده و هنوز برگ داره. از اون در بهار هم وقتی میخواد جوانه جوونه بزنه دیگه فصل مختل شده و چرخه‌ی فتوسنتز گیاه از دست میره خیابون ولیعصر بلوار کشاورز خیابون میرداماد اینها خیلی زیبا هستند ولی فکر کنید تا چند سال دیگه حتی خودتون به عمر خودتون میرسه نه عمر بچه‌هاتون که دیگه نمتونن زیر سایه این درختها قدم بزنن و لذت ببرن یه اشاره هم به بحث ذخیره انرژی بکنم تو دو تا ایالت شیلی اومدن گفتن که یه قانونی گفتن تو این دو تا ایاله 34 تا شهر هستش بیا چراغ ها رو استاندارد کنیم و خوبشون فقط تو یک شهر کالاما 20 تا سرپوش لاکپشتی با تخت عوض شد. تایم منم داره چیزی سی و, و در 4 تا46۵۳ هزار تا تقریبا نورافکن های استاندارد نوری که به سمت آسان میره استاندارد شد و 32 تا نرفکن هم 32 هزار نورفکن هم در کل این دوتا ایالت. که تو شرکت های خصوصی، تو ملک خصوصی بودن اصلاح شدن در کل 824 مگاوات ساعت برق جویی کرد ت... که این تا ناهیه 9 درصد جمعیت این کشور رو تشکیل میدن پیشمینه کردن که تو کل کشور باشه 412 گیگاوات ساعت جویی میشه خب من فرصت ندارم این همین بغل هستش یه چراغ به نظر استاندار که یه سرپوش داره ولی خب داره نور از کنارش به آسمان میره سایت رحصت خونه ملی نزدیک کاشان و اصفهان، باز نورهای کاشان و اسفحان اینا ببینید آسمان رو چقدر آسیب پذیر کرده و اینجا چقدر ما نور رو روبه چشممون داریم یعنی روبه از کجا گرفته شده بام تهران تو اون ارتفاع یعنی این داره نوره به سمت من میاد این چقدر نور مستقیم و اینا اگر حضب میشود این برج میلد چقدر خوش میتونست نشون بده هرچنین که برج میلد هم خیلی اوزای خوبی نداره سه برابر اندازه آنتن داره نور به بالا میره فقط برای اینکه من و شما لذت ببریم و خب بقیه موجودات چی میشن و اینجا تهران اندازه اهواز آلودگی نوری داره به خاطر اینکه اهواز چاه های گاز میسوزونن یه نمایی از شمال شرق دریای خزر اینجا تهران هستش، اصفهان اینور هستش و کدیر اینجا زیر آب خیلی نور دیده نمیشه فرصتم تموم شده تمدن‌ها رو می‌تونیم انتهای رود نیل از روی شانس آوردین می‌تونیم از, از روی آسمون واقعاً تمدن‌ها رو شناسایی کنیم خیلی دستاورد بزرگی برای جامعه بشری مچکر از توجه